اللهم آیا من آفرین محسومیم؟ الله سجّل از شکه بعد معلوم شد که انسان در مباحث اصول، اولی از مباحث و وان پ، وارد مباحث اصول شد. که محسوسا در عدیه از کتب این مرحس رو مقصد در اصول قرار دیم مقصد الابل که و این چند روزه تکرار کردم که این مرحس قرار و مسائلی که متعلقه به قطعه در آثار قدمای اصولین شیعه و در آثار اصولین اهل تونت وجود نداشته اینها بعد شیخ انصاری اضافه شده به مراحص و اصول و ارز شد که در قبل از شیخ در مثل مقاطیه مرحوم مجاهد به عنوان یک تمهید و مقدنه آمده خود اصف حجیت و, و که برها و در وقت شیخ هم از و در رساله اولیه شیخ به عنوان تمهید بوده و که برها شد جزو مقاصد, مقاصد و جزو مقاصد اصول و چند مرحله رو در زیبی این عنوان قرد قرار دادن اینها نبود در اصول قدیم کندن نبود مرحله اولش اصل رو جید قرد که تعالی صحبت کردیم مرحله بعدیش تقسیم قرد به طریقی و موضوعی که اینشالله اینجا صحبت امتظمه این این کنا مرحله بعدی قیام امارات و اصول عملی مقام قرد یا طریقی یا موضوعی که بعد اینشالله صحبت می مسئله بعدی تجربی بود که طبعا طبیعت این مسئله به این مسئله کلامی میخوا این رو در زل امحاس و قصول به مناسب مناسبت مطرح کردن خب مسئله علم اجمالی رو هم در اینجا مطرح کردن این شاید را ها در شاید اینکه طرح علم اجمالی در اصول به طور متعارف تو مباحث احتیاطه و که در اینجا از اگزامه دیگر مطرح شد این هم جزه مباحث در فرار داده شد بحث دیگری بحث با, با اخباری ها قطع حاصل از مقدمات غیب شرعیه این رو هم در اینجا اضافه کردن آمین در اصول این بحث در اینجا بردن یه بحث دیگه هم با اخباری دارن که از من پس حجیث زواهر کرد یه بحث دراجعه به بودی و موافقت التضامی که آیا موافقت التضامی هم لازم هست این کل از حجیث خلاصه درکه این چند شده که معلوم بشه کل عبهات قد که در اصول متاختر شیعه اضافه شده کلن اینه و نذا ممکنه خودشما یا آشهاش فکر بکنید بحث بکنید که آیا اصولا اینها جزو اصول هست یا نیست کل این عبهات رو که هست کردید؟ آیا کل این عبهات جزو اصول هست یا بهتر این این را طور که اجمالاً تمی... جزه تنگیدات و تم... مقدمات مواحص حجج قرار دادن یک مقصد مستقلی قرار ندید در اصول کمان این که ادهه قرار اما در نصف کفایه بحث را در حجج, حجج و امارات کرده بخش اولیش در قرار داده حالا این خلاصه بحثی بود که من برای شما ترسیم کردم که کل مباحثی رو که با عنوان قصد الان ما داریم و از شد که مرحوم استاد که هنوز هم سرش رو من نمی دونن خلافاً لباقه والمعلوم معروف، این تقسیم قصد رو در مصباح و اصول بعد تجریه رو بعد از مرحث حجیه ایشون مرحث تجریه رو بعد از مرحص تجربی از صفحه 33 به بعد در این شاپ جدید مصباح الاسور اینشون تقسیمات قطع رو بعد از تجربی رو داریم معروف چون اینه که تجربی رو بعد از این بحثا قرار میدیم ما به خواهند المشهور بحث تقسیم و اصول رو اینجا آوردیم تجربی رو این شبا بعد بررسی میکنیم اینم مطلب دو بود بعد مرحومه استاد، آن آره ما چون محور بحث و برنشو که مدت ایسیدی از کتاب کفایی رفعیت کردیم در کلمات است که من گفتن که کتاب محور باشی که آن اون مراجعه کنن مثلا این مصباح مرگونهای بهسودی امتیازش اینه که خیلی موجب نوشته به و محاصرات که ثابتا میخوندیم این محور بحث رو همین کتاب به اصطلاح بردیم مصباح ایشان قرار دید و گایی اوقات من عباره ایشان خونده میشید شد که ایشان فرمودن به که قط یا طریقی یعنی بله, بله اقسام اقت قط در موضوعی رو مطرح کردن فرمودن گالی اوقات در قطع موضوعی چون قط یا طریقی است که من توضیحش عرض کردم اتیاج رو برستند یا طرق موضوعی است از شد این یا و یا این تقسیم پرد نیست. از نظر تنی این که بگیم قد یا تریخیست یا موضوعی درست نیست. چون موضوعی بودن اعتباریست. نیمیشه مقصر رو بیر ایک امر حریری به اعتباری تقسیم بکنید. در ارض در ارض هم نیستن. درست نیست این تخصیم. اگر همیشه یکیه. آن قد تریخی. از دو قسمی نیست. و این قاعده تاریخی رو گاهی در لسان دقیق موضوع قرار می‌ده این بحث دیگه نیست ازن تقسیم درست نیست این تقسیم کردن در بعض از عباراتی که خدای مراجعه بفرماین مثلا تقسیم القصد قصد یعنی قصد تاریخی رو موضوعی تقسیم کردن تغییر تقسیم درست نیست قد گاهی و ما موضوع میشه در لسان خود این هست راست اعتباره خود صفت رو عکس میکنه و وقت مذهب استاد اعصابی گفتن که چندان مؤثر نیست. اون چه که مؤثره یکیش این که آیا میشه پس عکس بشه موضوع در لسان خود بکنش. مثل بگی اگر قرآن پیدا کردی به وجوب نماز جمعه نماز جمعه درست باشه. اینو نباید به ممکن است بعضی از در اول بیارن. اینو استاد رحمه الله در این کتابه به اصطلاح در کتاب مصباح اصول در صفحه 47 آورده. یعنی بخش مفصلی کردن بعد در صفحه جدا بعد از طریق توضیح میشه. در صفحه 47 این بحث آورده ان خوب بود همینجا اول توضیحی دادن بعد اینقدر فاصله نمیشه فقط بالا مساله اصولیه ما اگر به عنوان این به مثالشون جزه قرطب تسلسل عمومی آثاریشون 47ه به حسب خود مثالشون جزه دو اما تسلسل عمومی 47 در صفحه 47 اون تکلیه بحث اونجا آوردن یک فاصله شده ولی یعنی داون در نظر بگیرن این یک بحث اساسی در اصول که آیا قطع به یک حکم میشه موضوع خود اون حکم بشه اصلا که قاضی پیدا کردی نماش جمعه واجبه اون وقت بحث واجبه ان شاء الله تعالی ما در اونجا عرض میکنیم عالی مقدار بحث کردم من در اونجا ان شاء الله توضیحت خواهیم کرد که اصلا این بحثی این صورت بسیار تقیمه و نمیذارم که این بحثم در کتاب ما جا پیدا کرده بحث ضعیفی نیست این بحث چیز دیگه‌ای بوده به این صورت اشتباهی مطرح شده ان شاء الله در مهلت در اینجا یا قطع به موضوعه مثلا اگه پیدا کردی این خمره نگسه همون که یا قطع به ختم برای موضوع دیگری مثلا اگه قصر در داخل نماز جمعه واجب صدقه بده این مشکل نداره اگر قصر بده اگه کنی نماز جمعه واجب صدقه بده اینا مشکل نداره قصر پیدا کردن نماز جمعه واجب به نماز جمعه واجب نه مشکل داره این تقسیم بندی واضحه یعنی احتیاج به شرط خارجی و داخلی نداره این قصر و یو غاظن چیه چون برمیادن به نحوه طریقی اخت میشه و داره بقا به نحوه صفتی محبوم اصطاد یه توضیحی برای کلمه صفتی فرموده که مراد از صفتی در اینجا جوزه صفات متعصله است. در مقابل صفات انتظائی امور انتظاری و اعتباقی ما این مطلب ایشان توضیح داره یه گفته مراد آقا موسیقی از صفتی بودن صفت خاص مراده نه متعصد وقیقه متعصد که ایشون کرد میگن چون زن هم جوز صفات متعصد صفات نمکنه شکم جوز صفات متعصد صفات نفسی هموند مراد آیان و اصولی ها از صفت دارن، سه صفتون خاصه مراد اینه یعنی انسان وقتی که قرار پیدا میکنه نه از یک حالتی داره که از کردن اگه این حالت رو مثلا تبیر کمی بکنی. یا تعبیل کهیتیه مبسر بکنیم مثلا پس این نفس انسان رنگی سفید میشه مثلا اگر زن ریلا بکنه مثلا کدر میشه مثلا اینکه بیفرد مراده از که در اصطلاف اصولیم در اینجا آمده مراد صفت خادثه نه صفت متأثره که بیرون فرموندن خب شب زن نخیز استفاده متأثره ساعت نمی کنه مرادشون اینه که در حالت خط انسان یک حالت خاصی داره پس اون تو معنی نفس داره این من محمدون الذین بالله و رسولی فم لم یرتابو این لم یرتابو اون صفت رید نداره تردید نداره ده مایه میگو که الان مایه میگو حالت تردید میخواد در نفس شما نباشه یا حالت یه حالتیه یک صفت خاصیه مراد از صفاتیت اینه. گاهی طعن رو به لحاظ این صفاتیت موضوع قرار می‌ده. گاهیم قرار چون گویان خودِ چون طریق و عرفان طریقه، آن لان ترییته. این توضیحاتی گذشت و انصافاً چون مقام مقام اعتباره هر دوش امکان داره. هم تریقیتهش امکان داره هم صفاتیتش. دار. این مقدار بحثی نیست. این مقداری که مرحوم شیخ تفصیل کرده این رو بحث اصولی قرار در میشه چون بعد آننا برای این یک فاهده مترکت که که در اصول در میخوره اون فاهده اینه که اگر قرد طریقی بود خب امارات قایم مقامش میشه اگر قرد موضوعی بود اگر موضوعی بود به نحن طریقی یعنی باز امارات قایم مقامش میشه به نحن صفتیت نمیشه این مراد بود؟ که در حقیقت اگر رو خواهی دقیقاً این بحث و اصولی چیه این یکی بحث و اصولی امارا قرار مقام کدوم قرض میشن پس این تقسیم تمهیدی است برای اون بحث اون چرا که من دیروزم آنسرا خلال روزوز عرض می کنم ممکن است شما ببینید تمام این مصادیق مثلا قطع موضوعی اولا قطع تجریدی که بیان <تصحان> نمیخواد چون اورفیت به احتیاج به بیان نداره و قطع موضوعی هم قیل از این جال تا به احضر در نسانه دریگه قیل از او اصولا مواردش در فرم کمه من از کردم از سالهای پنجا و شست اولین چیزی که از معارف اسلامی در حوزه ها در بین صحابه تا این شروع شده از تاریخ همیشه در ذهن تونی تاریخ باشه تقریبا فکره به تفسیر با بقیه معارف در پیدا شد. فر و تفسیر تقریباً قدیمترین معارفی که پیدا شده. تا حدود سالهای 180 از سال 180 از سال 50 60 تا سال 180 180 برای تکمیل فم اصول تأسیس شد. اصلا اصول بر پایه اکثر انتظار شد. و همین سال‌ها قبل از 260 رجاح هم تأسیس شد. اما ذری فرمان صحابه صدرش آزاد دویس رجال کرد روش کردن از سال دویس به بعد تا سی تا سی, سی با احمد تا سی کتاب های حدیثی اهل سنت در این نوشته شده یعنی تمام کتب مهم اهل سنت های مسلم تا اینا در غرمه سرمون تدریم شده خب در نحوه تدریمی این علوم اسلامی همی جاید زنیتون باشه در سال 180 170 180 البته اولین کتاب اصولی که هم داریم رسمن کتاب رساله شافی که نزریکای 195-197 نوشه خودش 23-24 افتادشه لیکن قدیز شافی هم از غیر شیر رسه حالا من تاییز و اصول رو نمیم که تحرک شد و آمد اینطور قرارداد قرار داشت تو بفرماید یک سری از مسائلی که در کل مسائل فقر کار برد داره این رو تو اصول یک از همون مسائل که موردی کار برد داره تو مسائل معاینه این گوش تو فر. لذا من همیشه عرض کردم این نکته رو در نظر بگیرین که یک مسئله اصولیست یا فقری مثلا هم بحثی که دادن که اگر زمیر در باب آم عوض یک ذریعی بکنه بعد از افراد آم بعد مخلقات تربست این تو اصول رو بزن. ما از ترین ما در فقر یعنی در قرآن در حدیث در روایات سنی چیه همچی چیزی نداره جد همون آیه واحده از آیه واحده ما دیگه نداره اینکه زمیر برگرده به عام مراد بعد از افراد آم باشه هر جا مسئله موردیسی با تو فقر بگذارن اصل این مسئله نبات اصول بیاد یک ادعا مختصر برگردان یک ادعا طولانی برگردان چند صفحه برگردان اصل این بحث اصول لعبه این بحث غلطه چرا چون این بحث عرفی نیست مثلا بگه دیشب رفتن دیدن علما و به اینها گفتن اینها یعنی با اصولی نیستن به معنی ما علما همه علما اینها برگرده به یک خاطر عرفی این که میگه علما بعد زمین بره یه مراد یه این قطعاً اورجینال حالا در یک مورد قران آمده اون یا باید بگیم آیه مجمله یا با شواهد روایت اغلبیش تایید بکنید یا اصلا یک نکته دیگری رو مطرح بکنید که ما اونجا مطرح کردیم که المطلقات اساساً مراد برش چیه اصلا طلاق با تو قران نرفته بحث موردیه اون بحث موردی رو نباید اصول و این رو خوب دبتت بکنیم این مسائل فرس کل آن نفرح میشه اینها شایسته اصول هم اگر موردی نباشن یا اینها شایسته فقه هم اگر موردی باشن این یک نکلی که من دوست دارم تأکید تأکیم میکنم کنید شکر در آخرای برد شده این رو توضیح هم از اون, اون بعد از همین مقدار رو ده. یا موضوعی یا صفتی بعد از مرمون شیخ مثل مرمون نایمی و دیگران باز هر کدام رو به دو قسم تقسیم کردن مثلا گفتن اگه قد طریقی باشه یا به نقل تمام موضوع یا به نقل جزء موضوع صفتی هم باشه یا تمام موضوعه یا جزء موضوعه چهار قسم کردن این تقسیم در کلمات شیخ ذکر نشده بعد یه تخصیمی هم در کخایه بعد اضافه جرکه استاد اضافه فرمانه چون نقطه فنی خاصی نداره آن در همین کتاب استاد نراجعه کنن اینشانده که باید میکنه چون که که بحث نکاز خاصی نداره بعد ایشون میپرمانی که خود مرموم استاد القط الموضوع معروض به الموضوع نظر سفتی یعنی قط ملاق و قطع موضوعی هم یعنی ملاقات ملاقصه تا چهار رس میشه یعنی تارتا این طور میگه اثر مترتب میشه بر صفت قرد این صفت خواسته با احراب واقع یک جز اشقته صفت انسانی یک جزی واقع یه دفعه اثر بار میشه بر همین صفت کار به واقع نظر. از هم تو صفت قطع داری؟ همین که صفت قطع پیدا شد اثر بار میشه خوب دقت فرموندی؟ این میشه تمام اون موضوع اگر واقعا لواصت میشه جزء موضوع میگن اشکال نداره ممکن است شاره بگه اگر تو صفت قصد داشتی میخواد واقع باشه یا نباشه همین که صفت قصد داشتی این حکم ترتب داشت. راست میگم اشکال نداره اشکال نداره گویا ممکن است شاره بگه نه باید صفت قصد داشته باشی واقعا موجود باشه اثر رو این دو تا داره خب راست اعتبار مقام اعتبار واسعه میتونه اعتبار بکنه این مشکلی خاصی نداره راست مطلب طریق. این در باب صفات در باب طریقی چون طریقیت داره مرحوم نائینی اشکال دارن میگن اگر به نحوه طریقیت باشه نمیشه تمام الموضوع باشه جزء الموضوع میشه بگه صفته غرض داشته باشه به نحو طریقیت و واقعا احراز شده باشه واقعا موجود باشه اما بگه طریق صرف باشه این صفت رو لحاظ میکنه و در این حال جز نباشه تمامون موضوع باشه نمیشه اشکال مرمونایینی اینه کلام مرمونایینی تقریب کلامیشان هم فکر بکنم بازه نه چون وقتی قصد به نحوه طریقی ید شد چون دیگیم طریق یعنی چی یعنی واقع در نظر گلید <تصفيق> یا به طریقات جایی برلسانه از ایشان مطروح نظرمون من مطروحه اگر شد تمامون موضوع نظر ما به طریقه دقت بکن. اگر گفتید طریق و مطوق با هم میشه جزء اون موضوع مشکل نداره اما اگر گفتی طریق یعنی تمام حمد شما به مطروقه به واقعه چود تمام اون ای تمام حمد شما به خود طریقه اون تمام موضوع مناش این دیگه تمام موضوع اینه حکم بار میشه برای این طریق اگر طریقیت قرار در نظر گرفته شود به لحاظ یک موضوع شد خب بخواد جزء موضوع باشه مشکل نداره. تمام موضوع تنافی داره یعنی تمام موضوع بودن طریق با طریق بودنش تنافی داره چون تا طریقیشون واقعه به نگاهی همینی معنی طریقیت اینه یعنی. مندت که در واقع. ده که تمام موضوع قرار داره نیم. تمام نظر به طریق باشه این دوزه با هم دیگه نمیشه این اشک ناینی به تقریب بیان همین تغییر رو استاد هم, هم و هم با مرهوم ناینی موافقت فرمودن فرمودن به هم مرقل صفحه 35 المعخور فی الموضوع به نقل طریقی فلا یمکن اخذهو تماما موضوع از معنا کنیه تماما موضوع انهو لا دخلل الواقع فی الحکم اصلا حالا این تقریب رو کردن تغییر درست دیام هست گانی تأبیر به مطروغ میکنن به جهه واقع تو درمانه مجازن مثل بلالحک مترکت بانه علا نفس سلقت و مرکان مخالفاً للواقع روشن شد و معنا کونیهی معخوزن به نحن طریقی امن للواقع دخلن نه این للواقع اصلا نظر به واقعه وقتی ککیم طریقی نظر به واقعه امن للواقع دخلن که الحکم و اخذ الحکم و احضال قد, قد طریقا میلید و نحویش که میگید تا یکون الجمع بین احضیهی في الموضوع به نحوه و کونهی به نحوه تمام... تمام الموضوع من قدیل الجمع بین المتناقضه این جمع بین المتناقضه البته این متناقضه این مراقبیشان تو مقام لحاظ تناقض و و مشکل خیلی لحاظ نمیشونه جمعه بین متناقضه این لحاظ متناقضه این بخونه این خلاصه هی. این مطلبی که ایشون فرمودن همون مطلبی که استاد رضوان الله ساله علیه در اینجا از استادشون مرحوم نایمی فرموندن من برای نکات خارجی چون بحث از کردم خیلی اطلاق منظوری ما کمه به همه انهایشون چی برد این یکی که از آنها انها نداره و که مرحوم آزوی آفدست الله و سرمه و ایشان اصلاح دارن که این اشکال نداره در مقام دهاز جمع بین این دوله هاز اشکال نداره من راجع به مرحوم آزیه توضیح ایش ما اگه ارزوه کنم منابع ما راجع مرحوم آزیه در یه اول خب کتاب مقالات و اما که مقالات خیلی معقده خیلی چیچی نوشته و یه دقیقه تو توانی بحثایی در مذیبه ارز کردم خود مرموم این کار را تعمدن انجام دارد نه این کار را بساند بعضی خواهدیشون قلمشون هست این تصال خیلی خوشبیان هم بودی, بره بودی ایشون تعمدن مستار را ما مرموم آید بوجینوری قدستان لاسره داره نه را می پردن خود خدا ها به من می که مثلا آمیزا هستند که می شونست این مقالاتی که من نوشتم اینقدر پشنگ شدن کتاب درسی خواستم اینا خیلی اینکه انتقال به صورت معتقدتر تر بشه کتاب من از استاد مرحوم های بوجوردی از استاد مرحوم آسیا نرم و به میگو که این کتاب مثلا کتاب درسی میشه خب متاسفانه خیلی مترجمی نیست اما خب واقعا کتاب مفیدیه حسابات مرحوم آسیا در افکار و اصولی به خاطر هاش کاملا مورد عنایت باشه من ارز کردم که دقتهای ایشان از عرفیت خارج میکنه اون بدیه کاری ایشان مردم مرحومی آیینی قدس الله سره با دقتهای خوبی که دارن خیلی کلام و سعی هم عرفی تصیب بکنن و عرفی از موارد قانونی رو عرفی بررسیب بکنن انصافا یک هنر بزرگ مرحومی آیین داری میشن و یکی هم از که دارن این تغییرات ایشانه که خب پردازش متدیکی هست مرغوم آیا اشکان پهی بودجی رفته خدسلام هسته که از بزرگان خود این هم بوده این نهایت افکار از آن وزرگان دیگری هم تقریباً تیشون نوشته ما بیشتری اسنار رویشون داریم یه مقدار هم مرغوم آزیا در تهران اواخر حیاتشون خودشون به قلب خودشون یه تعلیقاتی بر و اصول مرغوم نهایی نوشته تا از اصول تقدرات مرغوم تقریبا میشه گفت تغییرات اول ایشان این که تقریباشون قبل از مروونویه به اثر شانلی کاظمی قدس الله و سره تغییرات ایشان نوشته شده اما چاپ نشده داره ورز میخوان چاپ بکنن و اونایی شایره قدیمی تر از ایشان هم دارن نوشته نویشای ایشان چاپ نشده نوشته های تری که از مروونویه چاپ شده همین قواعد اصول اون که مروون استاد اونم روی نوشتن مال دوره های آخره دوره بعدی یعنی عجل و تقریبات مرمومه های خوری قدس الله نفسه بعد از هواید شده و بین این دوتا هم طرف هست من که تو بعضی بخصها گاهی مفرح میکنن کنم اصولا خیلی مطرح می بین اون چی که در عجل و تقریبات آماده با اون چی که در کتاب فوادر اصول گاهی بین این دوتا طرف هست لیکن چون مرموم مرمومه استاد و, و مرمومه های می فهمیدن که فواید نزدیکتر به افکار مرحوم نایینی است، من ازشون چنگند. ما سعی می‌کنیم در افکار نایینی رو همون فواید اعتماد بکنیم. این تنقیسش نه استاد نباشه. اجرات سنه. ما رو ما وجودی فهم چون قرار بود خب سال‌ها دیگه جزء خصیصی این صحه تعبیر مثلا نایینی بودن، ایشون از ایشون که فواید به اصول به افکار مرحوم نایینی اه... یعنی مضمون افکار و و اینکه به اصطلاح به تعمیر میشن مثلا بعد از اون نوشته شد باز اون اصالت خودش رو حفظ کنه وقتی مرحوم ازیا تعلیغاتی و حواشی بر کوابد نوشتن اشتباه نشه بر تغییرات مرحوم کاظمی به قلم مبارک خودشون تعلیقاتی نوشتن که در این چاپ جدید جامعه مدرسین از تاد اصول چاپ نشد رو چاپ کردن نمیدونم آیا اون همیشه چاپ شده یا همیشه چاپ نشده اون رو هم من نمیدونم چون گاهی اوقات سکت بکنم بعضی مطالب روی بعضی جهاز سریمتادن شاب نشه حالا نه آیا همه اشتاب شده یا نه این چاپ جدید جامعه درسیم که در قوم شد یه از اون چاپ نجب انصافا تعلیقات مرموم هم داره و چون به قلم خود من آزیار سو قلاده نافع و عبارات شب نسبت به عبارات مقالات واضح تر عبارات مقالات پیشید خود منابع علمی خودمون حساب مخدوم وازع می‌کنه و من نشد دیگه اون وقتا در ذهن بودم برای ما این نکته برای من بعد ها توی قوم که مقایسه کنیم محله ابهام اینه که اون تعلیقات مرحوم آزی یا بر خواوه در تقاضا تو تعلیقات خود آزیام آمده این تو نهایت افکار که تغییر ابهاس ایشانه اون چی که قلم خود آزیام آمده. من نمی‌خوام حالا چه شده من هنوز خیلی سردای ای برجوی نری دانای آصفی معروف نری دختر ایشان از ایشان پرسهتون خبر ندیدن حالا مثلا شده جدشون خبر باشه از ایشون پروسی... اطلاع ندارن حالا تحصیلش بدهن از اصل موضوع اطلاعی ندارن یا حالا ما دیدیم برای اینکه واضحتر باشه این مطلبی رو که الان میخوام بگم این تو حاشیه حوادث اصول هم آمده من الان از تقریرات می خونم نهایات افکار جلد 3 همین چاپ که وصول شده صفحه 15 فعلا از نهایات افکار می خونم داخل تو حاشیه خود معلوم آزیه در تقریرات نائیمی هم آمده، باز احتمال میدم منهای برجدی و استاد رو تو تقریراتم اجازه وارد احتمال اغلایشون میدم اینه در دسته خود استاد روله این تقریب نیست این متن نوشته خود مرموم آزیه اینا تقریب نیست این متن هاشیه است که مرموم بر فوادر اصول نوشتن اگر آقای فوادر اصول داشتن در هاشیه چا چون هاشیه در این کتاب هم در محن پس خوب آین انایت بفرماید که منابع صحبت‌های مراجع وازیا یه مقداری از مجمع آل بروجردی، آی باشنودیچ چون شاگردیشون بودن، بنییش از این سه مستر در حقیقت که می‌دونم دیگه درگیر میشه دو مستر میشه یکی مقالات یکی هم مسئله نهایت افکار که تغییرات میشن بعد از این توضیح عرض می‌کنم این بحث رو توی مقالات ندارن این هست وازیا ایده از مباحثی رو که در تغییرات آوردن توی مقالات ایشان وارد نشده حتی به نفع همون ترتیب خود ایشان اشاره یک تطبی مثلا به نحوی یک تطبی نمی نویسن حتی به نحوی یک تطبی هم توی مقالات ندارن حالا نمی بعدها بعد ها پیدا شده من البته این رو نمی اما این رو توی به اصطلاح حاشیه شون دارن و توی نهایت افکار هم چاپ شده ایشان اینطور تاکید میکنن لایقاً انل علم و دیره من صفات الوجدانیت من صفات وجدانیت القاومت به نفس و امکانت متعلقتن به سور الحاکیت ان الخارج از صفت نفسانی گاهی متعلقه به صفات خارجی نیست مثل شجاعت مثلا گاهی جنبه های حکایت داره این توضیح رو من دیروز از کردم امروز همون بحث لطیفیه صفات نفسانی که جنبه حکایت داره به طور کلی دو جورن به طور کلی یک جور فقط جنبه حکایت دارن نقطهی دیگری ندارن خود دفت کنیم که قبل شعنشون حکایته، یک از شعن حکایت دارن یه اضافه هم دارن مثلا اضافه بر حکایت از خارج خود دفت کنیم مثلا نفس یک تزرزل داره مثلا میگن اگر در راه میرفتید چه خوف خطر نیست این خوف این خوف یک صفت نفسانی در اینجا این صفت نفسانی به جنبه حکایت از واقع نگاه خطر خطر واقع لكن فقط جنبه حکایت نیست حکایت از واقع با تزلزل با حالت حرج با حالت ذیق نفس این خوف الان نفس هرمنت الان خوب دقت بکنید ما تو اصول این بعد که اگر خوف در رسانه دلیل اخش شد آیا مراد طریقیتشه؟ مراد موضوعیتشه؟ مراد هر دو تون احسا دیم مثلا خوف الان نفسه رمک این چه جور میشه معنا کرد میترسه چشم در میگه روزه در روزه هست خوف الان اگر طریقیت باشه یعنی باید این چشم درد باشه اگر موضوعیت باشه حالت خوب. هر دو باشه خوب و موضوع بطریبی است و واقع خوب دقت میکنید این بحث رو تو اصول نه اوردن تو فهر اوردن توی سو متعرض شدن این همون نکتهی تو من اشاره گردن اما اونی که فقط جنبه یه حکایت داره چیز دیگری در محص نظاره این تو اصول اوردن این سفات نه روشن شد تفکیش پس اون جایی که جمعه یه حکایت داره یکیش تو فقه آوردن اون جایی که حکایت و اضافه داره زنافت بحث توش اون اونه تو آوردن اما شما تو اصول بحث ده میکنی که اگر خوب در لسان دیل مراد چیه مراد واقعه مراد اون سفت نفسانیش مراد هر بود کتابه همین احتوال اون جا هست بگه فهمه اما این فهمیدن موردی توی فقه وردن. علم رو اصولین بعد از شیف انسایی کاری که ما در اصول ادعایت شد یک ادعا از امخواست قرد تو اصول رو که نبود کردن دقیق فرمونه ایشون میگه این صفات نفسانی علم و غیره و به امکانت متعلقتن به صور حاکیتن خالص به نهل لا یلتفت و الازهنیت آفی زرد و وجودها ولا که معذاله که هم کند تنبول ولو ول اتفاقات و تحسینی لقاته ولو به نظر سانلی علاوه نظر اینشون وقتا هم شده که بخشی ازشون نگرش دخونی منافذ داره. هر من دو انشالله تکمیل می‌کنیم.